اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة مباركة يا فاتحهاس. نه تنها سوره فاتحه هست بلکه نام های زیاد دیگری دارد علام قرطبی رحمه الله در تفسیر خودشون دوازده نام برای این سوره نوشتند و بیان نمودند که بعضی از این نام ها را و وجه تسمیه شون را خدمت شما عرض می کنم اولا فاتحه به این سوره میگویند فاتحه یعنی آغاز و افتتاح هر چیز چون قرآن مجید آغاز می شود با این سوره مبارکه به این خاطر این سوره را میگویند سوره فاتحه علاوه از فاتحہ اسامیہ کی ان سور دارت مثل ام الكتاب يا ام القرآن سبع مساني تعليم المسألہ الحمد وافیہ کافیہ سورة الصلاة و نام های دیگری که برای این سوره ذکر کردند اما این سوره تقریبا مفسران اجماع دارند برای اینکه این سوره این در مکه مکرمه نازل شد این سوره مکی است چونکه در سوره حجر ما داریم و لقد آتینا که من المثانی و القرآن العظیم ای پیانبر صلی اللہ علیه وسلم ما به شما سبع مثانی داتیم مراد سبع مثانی سوره فاتحه هست و خود سوره حجر سوره مکی هست در سوره مکی وقتی که گفته میشه سبع مثانی بس فاتحه قبل از اون نازل شده اما بسیاری از مفسران معتقدند که در مدینه منوره هم نازل شده. به همین خاطر بعضی معتقدند که این سوره دو بار نازل شده. یک بار در مکه مکرمه و یک بار در مدینه طیبه. لذا به این سوره سبع مثانی میگویند یکی از دلائلش همینه. چون یکی دیگر از نام سبع مثانی هست. سبع به معنی هفت آیه. هفت آیه که مثانی تکرار میشه. چطور تکرار میشه؟ بعضی میگویند چون که دو بار تکرار شده، نزولش دو بار شده. به این خاطر بهش میگویند سبع مثانی. اما بعضی میگویند چون در هر رکعت نماز خانده میشه، تکرار میشه، بار بار خانده میشه، به این خاطر مثالی میگویند. علا ای حال هر دو درسته هم در نماز، در رکات نماز تکرار میشه و هم از نظر نزول این سوره مبارکه تکرار شده. یک بار در مکه مکرم نازل شده و یک بار در مدینه طیب نازل شده. و یکی دیگر از نامهایش تعلیم المساله است چون که در این سوره الله عزوجل سوال کردن و دعا کردن و خواستن را تعلیم دادند چطور دعا کنید اول خدا را تعریف کنید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بعد از تعریف کردنش رابطه خودت با پروردگار و با خالق را اعلام کن، اظهار کن، تو در چه جایگاهی هستی؟ ایا که نعبد و ایا که نستعین؟ جایگاهی من عبدیت است، جایگاهی من خواستن است، گداهی هست. بعد از اون سوال کن اهدن سرعت المستقیم، سرعتال الذين انعمت عليهم، چون که خداوند عزّ تعلیم فرموده سوال را. لذا این سوره را می تعلیم المسئله خب بقیه اسامی که کنز واقعا کنز عرض می چطور کنز و خزانه بزرگی هست وافی هست کافی هست چون که انسان را کفایت می کند همین یک سوره و سوره شفا هم می گوین چون رسول الله فرمود که سوره فاتحه شفا لکل لدا هست سوره سلات می چون در نماز خوانده میشه. اما یکی از نام های این سوره ام الكتاب هست و ام قرآن هست ام الكتاب و ام القرآن یعنی خلاصه کل قرآن مجید و خلاصه این کتاب خلاصه ای کتاب الله سوره فاتحه هست چگونه خلاصه هست هرچی که مضمون در قرآن مجید هست خلاص میشه در این سوره. حتی تقریری از عبدالله ابن عباس هست که لکل شیع لباب و لباب القرآن حوامیم. لباب و خلاصه و مغز کل قرآن حوامیم هست و خلاصه حوامیم حامی مومن هست و خلاصه حامی مومن فد علّه مخلصینه له الدين هست و خلاصه اون سوره فاتحه هست ایاک نعبد و ایاک نستعین اما یک تقریر دیگر یک توضیح دیگر از علامه شوری رحمت عثمانی رحمه الله تعالی است کسی که تفسیر عثمانی را نوشتند و تفسیر عثمانی به زبان فارسی ترجمه شد تفسیر کابلی اسمش را گذاشتند. حالا این فلسفه‌ش را نمی‌دونیم چرا تفسیر کابلی گذاشتند؟ چه مناسبت ایلابود؟ اولمایی از کابل بودن ولی خب این تفسیر مالیشون نبوده، مال اون ترجمه کنندگان که ترجمه کردند. تفسیر مال الله شهی رحمت عثمانی هست. خوب بود که اسمش را همون تفسیر اسلامی می‌گذاشتند. لذا همین تفسیر کابلی مال الله شهی رحمت عثمانی هست. اصلش اسمش است تفسیر عثمانی ایشون میفرماید که چطور ام کتاب است چطور مغز و خلاصه تمام قرآن مجید است شو معتقد است که اگر ما مباحث قرآن مجید را خلاصه بکنیم در قرآن مجید 6 موضوع به صورت عمده و اساس بیان شده یک توحید دو رسالت سه قیامت که نوصول دین استند توحید نبوت، معاد توحید رسالت قیامت چار احکام پنچ احوال کسانی که پذیرفتند توحید را پذیرفتند قیامت را پذیرفتند احکام را پذیرفتند بهش عمل کردند شش احوال کسانی که نپذیرفتند نه, نه ایمان را نه توحید را نه احکام را بیشتر در قرآن مجید همین شش موضوع هست یا توحید هست یا نبوت است یا قیامت است یا احکام هست یا احوال کسانی که پذیرفتند اقوامی که خداوند بر اونها لطف کرد نجاتشون داد، در دنیا هم فتده در آقلت هم بهشت میده شش احوال کسانی کے ناپذیرفتن حال ایشو می فرمائید کہ ان شش تا موضوع بہ صورت اجمال در سوره فاتحہ ذکر شدند ان شش موضوع چی هستند از الحمدللہ رب العالمین تا الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تا اینجا توحید است صفاتی که این صفات اختصاص به رب ما دارند توحید یعنی همین خدا را نه در ذات کسی را با او شریک بسازیم نه در صفات کسی را با او شریک بسازیم و در مالک یوم الدین موضوعی چی هست موضوع قیامت است يوم الدين روز جزا روز قیامت پس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين ار كنك قيامت اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم در اين آيات بیان احکام هست چون نعبدو اشاره به طرف تمام طرق عبادت است نعبدو اشاره به طرف تمام صورت های عبادت و طرق عبادت است که اشاره به احکام شده و همچنین اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم هم اینجا اشاره به احکام و بیان احکام هست پس ياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم انجا چی شد احکام بیان شد صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم منعم عليهم بیان شدند انجا اشاره به رسالت است چون که منعم عليهم در قران کریم شما میخونید چهار گروه هستند در راس منعم عليهم کیا هستند انبیا هستند اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين بس در انعمت عليهم بیان رسالت هست چهار موضوع بیان شدن توحید در الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قیامت در مالک يوم الدين احکام در اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رسالت در صراط الذين انعمت عليهم دو موضوع دیگه میماند کسانی که پذیرفتند و کسانی که نپذیرفتند، احوالشون بعض هم در همین سرات какую-anعمت عليهم احوال کسانی هست که پذیرفتند چه غیر از نبیین، صدیقین، شهدا صالحین هم هستند کسانی که پذیرفتند همینهای هستند که خدا بر انها انعام فرمود احوالشون همینه که خدا بر انها انعام فرمود هم در دنیا و هم در آخرت و آخرین گروه و یا آخرین موضوع کسانی که نپذیرفتند اونها بیان شدند در غیر المغضوب علیهم ولا دالین که اونها مغضوب علیهم هستند و ضالین هستند به این صورت این آیت که این شش مضمون و شش موضوعی که بیشتر در قرآن از اینها بیان شده این شش مضمون در سوره مبارکه فاتحه به صورت اجمال و به صورت خلاصه هر شش مضمون بیان شدن این توضیح اول هست این از کنم که تفصیل اول هست که چطور سوره مبارکه فاتحه ام الكتاب است ام قرآن هست اما توضیح دیگری هست که شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله بیان فرموده این توضیح را و این توضیح بیشترشون نقل میکنند از امام ربانی مجدد الفصانی امام ربانی رحمه الله و امام ربانی روایت میکنند بالواسطه از سیدنا علی کرم الله وجه این توضیح را میگن از سیدنا علی هست والله اعلم این توضیح اینه که خلاصه تمامه علوم آسمانی قرآن مجید است و خلاصه قرآن مجید سوره فاتحه است زیرا قرآن مجید به اعتبار مضمون به اعتبار موضوع بر چهار بخش تقسیم است اول از سوره مبارکه فاتحه الحمد لله هر چهار بخش با الحمد لله شروع میشه از سوره مبارکه فاتحه الحمد لله رب العالمین تا پایان سوره مایده دوم با الحمدلله شروع میشه از اول سوره انعام تا پایان سوره بنی اسرائیل سوم با الحمدلله شروع میشه از اول سوره کهف تا آخر سوره احزاب چارم از اول سوره سبا شروع میشه باز با الحمدلله تا آخر قرآن مجید پس چهار موضوع هستند که بیشتر در قرآن مجید اینها بیان شدند در این سوره ها. در بخش اول که الحمدلله تا آخر سوره مایده هست، امدترین مسئله، ترین مسئله و مهمترین مسئله که بیان شده، بیان خالقیتی الله عز و است. بیشتر بحث خلق است که آفریدگار، خالق، فقط و فقط الله است این مضمون در بخش اول است در بخش دوم که از سوره مبارک انعام شروع میشه تا کهف موضوع اصلی ربوبیت است یعنی تنها خدای تعالی بندگان را خلق نکرده و سر نداده به حال خود را نکرده بعد از اون اونها را تربیت کرده نشو نما فرموده از ابتدا تا انتها الله عزوجل انها را رشد داده پس در بخش دوم بیشتر صفات ربوبیت است از سوره انعام شروع میشه تا سوره کهف و بعد از سوره کهف که بخش سوم هست این که پادشاه مطلق که بر تخت پادشاهی متمکن است و دارنده تمام تمام تصرفات و اختیارات هست تدبیر و تصرف عالم در دست او هست نافع او هست زار او هست مالک و متصرف مختار او هست برکات دهنده بیشتر در این بخش بیان شده از سوره کف تا سوره سابق و از سر سباق که بخش پایانی هست تا آخر قرآن مجید این مطلب هست. علاوه از اینکه خداوند مالک و مدبر و متصرف و مختار است، از کنم که نه تن تنها مالک مختار دنیا بلکه مالک و مختار دنیا و اقبال و هیچ کسی در او نمیتواند شفاعت بکند. شفاعت غالب. شفاعت غالب شامل هر دو شفاعت قهری و محبت میشه لذا علاوه از اینکه این ذات مالک و مختار هست علاوه از اینکه این ذات در دنیا تصرفات دارد در آخرت هم دارد چون بیشتر این بخش بالخصوص از قاف به بعد مزامین اخروی بیان میشه پس علاوه از این هیچ کسی در محضر او قدرت و تواناییش شفاعت را ندارد شفاعت غالب خب این چهار مضمون در قرآن بیان شده یک خالقیت دو ربوبیت سه ملک و تصرفات چهار نه تنها تصرفات در دنیا بلکه در آخرت و نفی شفاعت غالب از غیر الله این هر چهار مضمون به صورت خلاصه در سوره مبارکه فاتحه وجود دارند چنانچه از الحمدلله که حمد برای الله ذکر شده و مراد از الله وصف مشهور است یعنی خالقیت چون بعد از اون رب العالمین آمده اول خلق میکنه بعدن تربیت میکنه پس در الحمدلله خالقیت ذکر شده در رب العالمین ربوبیت ذکر شده اینا گفتم که مراد از لفظ جلاله الله خالق هست چون طبق قاعده مشهور میگن لكل فرعون موسى لکل فرعون موسى یعنی چه یعنی لكل مبطل محق هر وقت فرعون الان گفته میشه مراد اهل باطل است هر وقت موسی گفته میشه مراد حق و اهل حق است پس لفظ جلاله الله وصف مشهور پروردگار مراد است. خب همه دنیا چه مسلمان و غیر مسلمان خداوند را با چه وصفی میشناسد با خالقیت. وقتی میگم الله کی میگه اون ذاتی که ما را درست کرده زمین را درست کرده آسمان را درست کرده. پس مراد از لفظ جلالی الله خالقیت هست. مشرک مشرکان هم به این اعتراف داشتن ولی این سألت هم من خلق السماوات والارض لیقولن الله خب مضمون دوم که ربوبیت است در رب العالمین بیان شده خب رب العالمین مشخص است و در الرحمن رحیم اشاره است به مضمون سوم چون مالک و مختار و مدبر و بر تخت پادشاهی او متمکن است چون که اون از نظر صفات دارای رحمت انتهایی و شفقت بالا است و این صفت پادشاهی اگر کنم تعبیر شده به الرحمن رحیم که بر بندگان لطف دارد ترحم دارد نعمت دارد و به بندگان کرامت می‌بخشد پس الرحمن الرحیم و اما صفت چهارم که نه تنها در این دنیا مدبر و متصرف است در اون دنیا هم هست و هیچ کسی هی یارای شفاعت غالب را در محضر او ندارد اون بیان شد در چی؟ در مالک یوم الدین خلاص شد پس به این دلیل به این سوره مبارکه چی میگیم؟ ایا که نعبدو و ایا که نستعین اما اون خلاصے دیگری که از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل کردم توضیح اون خلاصه که ایشون معتقد هست که لکل شئی لباب و لباب القرآن حوامیم ارز کردم خلاصے حوامیم فدع اللہ مخلصین لہ الدین هست و فعبد اللہ مخلصا لہ الدین علا للہ الدین الخالص که همین ها در حوامیم هست و این را هم اونجا خاندیم بیشتر هم می که مراد از دعا مراد از عبادت دعا هست که در سوره زمر هست فعبد الله مخلص الله الدین چون دعا جز اعظم عبادت هست الدعا هو العبادت دعا مخلص در سوره حامی مومن هم خداوند فرمود ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرا کہ دوہو عبادت ہر دور در ایک آئے آورده پس خلاصے حوامیم چه شد با توجوب این آیات کہ همه در حوامیم امهدی در حاجات و مشکلات هیچ کسی را بجز الله عزوجل فریاد نزنید نخواهید در سوره زمر هم همین است که قبل از عوامیم است مقدمه عوامیم است فعبد الله مخلصا لو الدين عبادت را همه عبادت ها را به خدا اختصاص بدید حال این مزامین همه خلاصه شدن در ایاک نعبد و ایاک نستعین چون در ایاک نعبد و ایاک نستعین هم خلاصه ایاک نعبد و ایاک نستعین اینه که عبادات ما هم اختصاص به الله دارد استعانت و دعا ی ما هم اختصاص به الله دارد. پس از این با توجه به این تقاریر به این توضیحات این سوره نامش چی هست؟ ام الكتاب هست. یا ام قرآن هست. اما سبع مثانی که به این سوره میگویند ارز کردم هفت آیهی که تکرار شده اما در مسداق هفت اختلاف است حفت آیه است بسیاری از بزرگان علما فقها همچون امام شافعی رحمه الله معتقد است که حفت آیه از بسم الله شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم این آیه اول است الحمد لله رب العالمین آیه دوم است تا اینکه به آخر در باره آیه آخر که صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان آيه را ایشون یک آیه میدونند اما اهناف معتقدند که بسم الله الرحمن الرحيم یک آیه هست اما ببخشید اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم این را یک آیه میدونند اما اهناف معتقدند که بسم الله الرحمن الرحيم یک آیه هست برای فصل سوره ها نازل شده اما جزء هیچ سوره نیست جزء کل قرآن مجید است به این دلیل اگر خواستی قرآن را ختم کنی یک بار بسم الله الرحمن الرحیم خواندنش لازم است نخانی ناقص شده اما جزء از سوره فاتحه نیست معتقد الحمد لله رب العالمين اياك الرحمن الرحيم دو مالك يوم الدين سي اياك نعبد واياك نستعين شار اهدنا الصراط المستقيم 5 صراط الذين انعمت عليهم شش غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7 خب ان در رابطه با سبع مساني همه اين مطالبي كه خدمت شما عرض كردم همه اينها در واقع چی بود وجه تصمیه ای این سوره به نام های مختلف چرا سبع مسئلی میگویند چرا تعلیم المسئله میگویند چرا ارز کنم که ام الكتاب یا ام القرآن میگویند اما آغاز شده قرآن مجید و همچنین این سوره با بسم الله الرحمن الرحیم معمول رسول الله است و دستوری رسول الله صلى الله عليه وسلم هست که هر کاری با نام الله آغاز بشه کل امر ذي لم لم ببسم ببسمله فهو ابتر يا في روايه اقطع وابتر هر امر مهم و ذي شانی که بدون نام خدا و بدون اسم الله آغاز بشه و بی برکت هست، اون دنبوریده هست او بی حاصل است آن حضرت صلی الله علیه و وسلم دستور دادند و امر فرمودند هر کاری با نام خدا شروع بشه بر اساس این این قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده اما اگر کاری بود که اونجا ورد مخصوصی، ذکر مخصوصی از آن حضرت منقول است. همون ذکر مخصوص را می که بیشتر در اون اوراد و اذکار هم بسم الله وجود دارم. مثلا غذا می بسم الله و وعلا برکت الله. می اللهم بسمک اموتو و احیا. یا بسمک اللهم اموتو و احیا هر دو روایت. حیوان رذب می بسم الله الله اکبر اما در غیر این صورت که اگر ذکر و ورد معمولی نیست اونجا بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم در آغاز هر کاری آغاز درس بلند شدن نشستان و رانندگی کردن کار دیگر و این بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم که سد سیزده در اول سد سیزده سوره آمده گرچه خدمت شما ارز کردم از نظر امام شافی رحمت الله علیه این سد سیزده آیه هست از نظر احناف یک آیه هست اما به خاطر فصل سوره ها تکرار شده ذکر شده و معنای بسم الله الرحمن الرحیم این را هم نگفتم که بر اساس اون تقریر عبد الله ابن عباس کے خلاصہ کل قران حوامیم و خلاصہ حوامیم فتع اللہ مخلصین له الدین یا فعبد الله مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص و خلاصہ ان ایاک نعبد و ایاک نستعین و میغا خلاصہ یاک نعبد و ایاک نستعین باحسدر بسم اللہ چونکہ بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متعلق هست هاسکه در آخر اون فعل مقدر است اون فعل بشتر میگویان استعینو هست بسم الله الرحمن الرحیم فقط بنام الله که رحمان و هست من استعانت می طلبم کمک می فقط و فقط به نام اینم هم توحید شد اما لفظ جلاله الرحمن و الرحیم هر دوی این لفظ در زبان عربی به معنی رحم کننده هست اما اهل علم می در رحمان مبالغه بیشتر هست چون که رحمان الفاظش هم بیشتر هست رحمان الفاظش پنج تا هستند رحیم الفاظش چار تا هستند زیادت اللفظ تدل على زیادت المعنى و دوم این رحمان اشاره به رحمت دنیا دارد و رحیم اشاره به رحمت آخرت دارد رحمت دنیا عمومی هست رحمت آخرت خصوصی هست رحمت دنیا شامل هر کس میشه مخالف و موافق کافر و مسلمان اما رحمت آخرت شامل موافقان میشه شامل مؤمنان میشه شامل دوستان میشه اما رحمت دنیا شامل دوست و دشمن میشه و سیغهایی هایی که بر وزن رحمان هستند در اون سیغه ها شدت و عجلت هست مثلاً غضبان سکران غضبان اونی که خیلی عصبانیه سکران اونی که حالش خیلی بد هست و نشه هست اما ضمن اینکه در اینها شدت هست در هر دو کیفیت شدیدش اثرش هم زودگذر است غضبان اگر کسی غضبان باشه ده دقیقه 15 دقیقه یک ساعت بعد از اون حالتش نرمال میشه نه سکرار هم حاکزا به همین خاطر رحمان که دلالت بر رحمت زیاد دارد اما این رحمت دوامی هم ندارد این رحمت تا که هست تا روزی که زنده هست انسان تا موت هست بعد از این که مرد دیگه تمام میشه چون تا دنیا کردم این اختصاص به دنیا دارد اما رحیم که هم سیغی صفت هست در رحیم هر چی که بر وزن رحیم باشد الفاظی که بر وزن رحیم در اونها دوام و پایداری دا پای هست مثل جمیل مثل کریم جمیل برای یک سات زیبا نیست جمیل اونه که همیشه زیبا کریم اون کسی که دارای سخاوت و کرامت هست همیشه هست بس چون این صفت مربوط به آخرت هست رحمتش اونجا همیشگی هست پایدار هست رحمتش هیچگاه پایان پایان نمیپذیرد. خب این مقدمه بود در رابطه با این سوره مبارکه الحمد لله رب العالمین اما حال آغاز می این سوره مبارکه را الحمدلله رب العالمین الفلام بر اساس گفته عامه مفسران الفلام استغراقی هست تمام تعریفات را شامل است. هر تعریفی باشد خب اگر کسی بگوید خیلی تعریفات هستند که مال مخلوق هستند در مخلوق وجود دارند اون تعریفات هم به خالق بر گردند چون مخلوق اگر خوب است، اگر زیبا هست اگر وسیح هست اگر بزرگ هست اگر نفعش عام هست اون به دلیل خالق هست خالق او را چنین درست کرده خالق او را زیبا ساخته بالاخره. اون تعریف کوہ را شما تعریف میکنی از نظر زیبایی از نظر استحکام دریا را تعریف میکنی زمین را تعریف میکنی آسمان را تعریف میکنی درخت و را تعریف میکنی زیبایی بلبل و صوت بلبل را تعریف میکنی همه به الله برمیگردد چون که الله او را آفریده به این خاطر این بزرگواران میگویند که الحمدللہ الفلا لام استقراقی هست و یکی از تعلیمات رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم اینکه خداوند حمد بشه خداوند حمد ببلشه الحمد لله تملا الميزان میزان تراپور میکند الحمد لله کی میگویی این الحمد برایت درختی میشه درخت سبزی میشه که بهشت تو را آباد میکند به همین دلیل صفت رسول الله و نام رسول الله در آسمان ها چی احمد یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم ومبشرا برسول یاتی من بعده اسمه احمد چون از همه بیشتر حمد کننده است از همه بیشتر تعریف کننده است او بیشتر خدای عزوجل را حمد میکند لذا شما در تعریف در تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید هر جا خدا را حمد میکند شما غذا میخورید ایشون تعلیم دادم بعد از غذا چی می خانی؟ الحمد الحمدلله میخانی بعد از حتی غذای حاجت الحمد لله میخانی حتی بوقت وقت مصیبت الحمد لله على كل حال این قدر که حمد در تعليمات رسول الله صلی الله علیه وسلم و تعریف خدا در تعليمات رسول الله وجود دارد در هیچ دین و مذهبی این حمد با این وسعت بیان نشده لذا به این خاطر حمد را، همه محامد را، همه تعریفات را اینها میگویند برای الله است اما قبلاً به صورت اختصار ارز کردم که یک سریع اشکالاتی و ایراداتی بر این چی گرفته میشه بر این توضیح که الحمدلله الفلامش استقراقی باشه شامل همه تعریفات باشه چون که بعضی صفات هستند که اون صفات در مخلوق هستند و زیبنده خالق نیستند گرچه اون توجیه را میکنیم که اگر در مخلوق زیبایی هست در مخلوق یک صفتی هست اون صفت هم بالاخره به خالق برمیگرده چون خالق هست که اون زیبایی را خلق کرده و به وجود آورده. اصلش به خالق برمیگرده اما بعضی صفات دیگر هستند که در مخلوق هستند این صفات صفات آرزی هستند صفات استقلالی نیستند صفات دائمی نیستند اینا بموت فنا میشن مثلا صفت خدای تعالی حی هست صفت مخلوق هم حی هست من مخلوقاتم زنده هستن اما خداوند هو الحي الذي لا يموت هست مخلوق حیاتش بموت میشه از بین میره فنا میشه یا صفاتی مثل صفات خالق برای مخلوق هم بیان شده نسبت به رسول الله گفته شده رؤوف و رحیم بالمؤمنین الرؤوف رحیم، یا سراج منیر یا بشیر نزیر خب این صفات صفات پروردگار هستند اما وقتی که این صفات میان همه جا، این جاها بلاخره توجیه میشه این صفت مجازی هست این صفت آرزی هست این صفت هم به خدا برمیگرده و از این توجیهاتی که بنده خدمت شما عرض کردم پس این بزرگواران یعنی جمهور مفسران معتقد هستند که الفلام الف استغراقی هست تمام تعریفات را شامل میشه و این تعریفات وقتی که لایق پروردگار نباشند یا این تعریفات اگر در مخلوق باشند توجیح میشند اونجا با توجیه پاسخ داده میشه اما شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید نیازی به این توجیهات نیست نیازی نیست که همه صفات را برای خدای عزواجل ما اثبات بکنیم بگیم هرچی صفت هستند اینجا صفات خاصی مراد هستند اینجا هر صفت مدنظر نیست صفات خاصی به دلیل اینکه لام لام اختصاصی هست الحمدلله. پس باید صفتی را شما مد نظر داشته باشید که اون صفت مختص پروردگار است. اون صفات پس صفاتی که هیچ وقت نه صورت حقیقی و نه صورت مجازی اون صفات برای مخلوق از کنم که صدق نمی کند برای مخلوق اون صفت جور در نمیاد مثلا اون صفات صفات کارسازی هست صفت صفت متصرف معفق و اسباب کارساز معفق و اسباب حاجت روا مشکل گشا از دور و نزدیک سخن و فریاد احوال همی را بیننده سمیع و بصیر عالم الغیب این صفات صفاتی که مختص پروردگار در قرآن کریم نگاه کنید کدوم صفات را به خدا اختصاص دادن و از غیر خدا نف کردند. مثلا علم غیب قل لا يعلمو من في السماوات والارض الغیب الا الله بغیه بندگان خدا وما يشعرون ایانا يبعثون اونا از خود نمیدانند که کی از قبر حشر می و از قبر زنده می و بلند میشن. چه برست که از احوال شما بدانند بس ببین صفت صفتی است که اختصاص به الله یافته و از غیر خدا چی شده ناف شده یا صفت نافعیت و صفت ضر و این یمسسک الله بدر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله بس نافع فقط او است غیر او نیست ضر فقط او است کسی دیگه جلوگیری او نیست این صفات اختصاص به ار وارد دیگر وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه الله يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض رزق دهن آسمان وزمين. الله تعالى. مثل این آیه که صفات را اختصاص به الله داده و از غیر الله نافی کرده لذا مراد اون صفات استن شیخ میفرماید الحمدلله این تعریفات تعریفات که لایق الوهیت استند صفاتی که لایق الوهیت استند اون صفات اختصاص به الله دارند ببینید دلیل دیگری که شیخ بیان می فرماید دلیل عمدی هست دلیل قوی هست ایشون می فرماید هر جا که در قرآن کریم شما نگاه کنید الحمدلله رب العالمین بیان شده سیاق و سباق اون آیه را نگاه کنید مطالعه کنید تدبر کنید ما قبل و ما بعد اون آیه را نگاه کنید صفات خاصة بروادكارزك شدنت قبل الحمد لله رب العالمين وبعدز الحمد لله رب العالمين صفات خاصة مذكورة هستند مثلاً در سورة مباركة انعام هست فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قبل از والحمد لله رب العالمين صفات اختصاصی پروردگار مثل صفت کارسازی و مشکل گشائی این صفت کی در مصیبت فقط اللہ بدا دیتون میرسد خداوند هست که ظالمها را معاخذ می کند بغیر از خدا کسی نمی توانا مشکل شما را حل کند قبل از این این صفات بیان شده بعدا گفته شده الحمدللہ رب العالمین در سوره مبارکه نمل الحمد لله و على عباده الذين اصطفى قبل از این تذکیره حضرت صالح است قومش است تکذیب حضرت صالح توسط قوم و اینکه خداوند اهل ایمان را نجات داد اونجا میاد ان دمرناهم وقومهم اجمعين وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون بعد ذنبه لطن اسقال لقومه تذكير قوم لطن كما مؤمنين رنجاد نجات دا دادين منكرين را حلاق کردين وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين فأمترنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين آخر ميد وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين استفقوا بس صفاتی که این صفات را کسی غیر از خدا نمیتوند حتی پیغمبر نمیتوند چون اونجا کمک به خود پیغمبر است بعد از کمک به خود پیغمبر به پیروان پیغمبر به مؤمنین راستین و انجای اونها و اهلاک اعدای اونها دشمنان اونها بعد از اون خداون می فرمد الحمد الحمدلله رب العالمین در سوره جاثیه هم شما خواندید فللله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين خب این رب فقط الله است غیر از الله نیست رب آسمان ببین بعد از فللله الحمد همین صفاتی که اختصاص به پروردگار دارند در سوره صافات هم است و سلام علی سبحان ربک رب العزه سبحان بازم ربوبیت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام سلامون على المرسلین والحمد لله رب العالمین خلاص هر جه الحمدلله هست شما سیاق و سباق ما قبل و ما بعد را مطالعه بفرمایید تدبر بفرمایید در قرآن مجید اشاره شده بکارسازیه پروردگار بینکه خداوند حلال مشکلات هست بندگان و رسولان را از دشمنان و از عادا او نجات میدهد پس رب عالمیان جاء تمامه حمد صفات صفاتی کہ مال معبود هستند اختصاص به الله دارد به این دلیل این شیخ بزرگوار می فرماید کہ الف در الحمد لله این چی هست الف اهدی هست اهد خارجی هر صفت مراد نیست اون صفات خاصی که خداوند در کلام خودش اون صفات را اختصاص داده به نبی، به،, به،, به ذات خودش نه اون صفات در نبی دیده میشه نه در ولی دیده میشه نه در امام دیده میشه که بعضی از این صفات آیاتشون را خدمت شما تلاوت کردم خب الحمد لله رب العالمين. تمام تعریف برای الله ارز کردم مراد از لفظ جلاله الله وصف مشهور و معروف یعنی خالقیت تمام حمد و صفات برای اون الله که خالق است ابتدا انسان را خلق کرد و بعد از خلق بهال خود رها نکرد خوب توجه بفرمایید اینجا ای هست بعد از خلق به حال خود رها نکرد سر نداد بلکه تربیت کرد رب العالمین در اینجا میشه بگیم که تردید ملاحده هست ملحدین و فلاسفه که اونها معتقدند که خداوند عالم را خلق کرده اما بعد از خلق به حال خودش را کرده این نظام به صورت خودکار و اوتوماتیک خود می چرخد لذا همه چیز را به طبیعیات ربط می دهند چونکه فلان علت است به اون علت مثلا خورشید. تلو وقتی که تلو می کند به فلان دلیل حرارت میده، به فلان دلیل نور میده. همه چیز را به اسباب و به طبیعیات رفت میدهند به خدای عزواجل رفت نمی میگویند که خدا به حال خود رها کرده اما رب العالمین اونها را رد می کند که خداوند بعد از خلق و بعد از پیدایش شأن ربوبیت و وصف ربوبیت خودش را دارد یعنی تدریجا اونها را چکار میکند به کمال میرسن. هر چیزی را که پیدا کرده هر چیزی را که خلق کرده تا انتها هم میبرد پس از رب العالمین ما چه نتیجه میگیریم طوری که ما انسانها و غیر ما انسانها حیوانات، نباتات، جمادات ارض، سما. همانطوری که در وجود خودمان در پیدایش خودمان هر مخلوق محتاج خالق است، تا خالقی نباشه مخلوق به وجود نمیاد همچنین برای بقا و رشد خودمون هم محتاج رب هستیم برای محت... وجود هر مخلوق محتاج خالق است، برای بقا و رشد محتاج چی هست رب هست لذا رب العالمین است رب به معنای تربیت کننده تربیت یعنی هر شیء را هر شیء را از ابتدا از آغاز تدریجا تدریجا کم کم به کمال و به نهای رساندن به کمال و به پایان و نهای رساندن هر چیز را الله تعالی می‌رساند حضرت امام نصفی از امام وحیتی نقل میکند همین ترتیب خالقیت و رب را میفرماید هو و ابتداءا والمربي غذاا والغافر انتهاءا رب العالمی مانش اینه که ابتداءن خالق است اما بعدن نشو و نما غذا همه چیز میده تا که چی بشیم رشد کنیم به کمال برسیم و المربی غذاان غذا تنها غذا جسم نیست روح همست ما را که پیدا کرده یکی از صورت های الان ربوبیت و شان ربوبیت اینه که ما را که آفریده برای جسم ما هم تا روزی که زنده هستیم غذا مقدر کرده چقدر بخوریم برای برا جسم ما برای روح ما هم غذا مقدر کرده غذای روح چی هست دین هست کتاب های آسمانی هست هدایات و راهنمایی های پروردگار هست پس کسانی که از این غذاها درست استفاده می کنند و غذاان و الغافر و انتہائن بلاخره انتحاءن می کند می بخشد این خاطر ایشون فرمودن و هو اسم الله الاعظم تفسیر مدارک اسم الله العظم هم همین رب هست خیلی هم معتقده اسم عظم رب هست به همین خاطر شما می بینید در قرآن کریم همه دعاها ها با چی آغاز شده ربنا ربی ربی چون این اسم الله العظم هست خب الحمدلله رب العالمین عالمین به چه معنا هست العالمين جمع عالم هست و عالم سیغه اسم آلہ هست سیغه اسم آلہ هست یعنی هر آنچه که از آن به وجود خالق پی برده بشه و از طریق اعلی هست که از او خالق را شما و بر وجود خالق استدلال گرفته میشه مثلا این اشجار یک عالم هستند برای خودشون درختان هی می بینی رشد نما پیدا می کنند احجار یک عالم هستند برای خودشون یا مثلا تمام جمادات یک عالم هستند انسان ها عالم انسان ها عالم جنات عالم فرشتگان عالم اعرض کنم بقیه مخلوقات هر یکی عالی هست برای شناخت پروردگار به وسیله اینها شما خالق را میشناسید. چنانچه نظیری این هست یا حوزنی این در زبان عربی هست مثلا میگه خاتم انگشتر را چی میگن خاتم؟ علهاسنه اما قدیم به وسیله همین خاتم و انگشتر مهر می‌زدند الخاتم ما یو ختموبه یا القالب قالب قالب ما به زبان فارسی میگیم قالب مثلا بلوکی بلوک ها قالب دارند خشت ها قالب دارن اصلش از قالب ای ما یقلب به چپش میکنی قلبش میکنی از او چی درست میشه از گونام خش درست میشه بلوک درست میشه اشیای دیگه که غالب غالب هر چی باشه اون درست میشه ما یقل به پس العالم ما یعلم به عالم به چی اطلاق میشه به چیزی که به وسیله اون خدا شناخته میشه پروردگار عالم حیوانات انسان از اونجا پی میبرد که اینها خالقی دارن اینها آفریننده ای دارن پس رب انسان فقط نیست رب جنات فقط نیست رب عالمیان هست رب تمام عالم هست لذا چه استدلال می گرفته میشه چه انسان باشند حیوانات باشند نباتات باشند جنات باشند همه و همه چنانچه علامه صافی نوشته در تفسیر مدارک العالم کل ما علم به الخالق من الاجسام والجواهر والاعراض او کل موجود سو الله هر چیکی غیر الله باشد اون جزء عالم هست بله لانه علم علا وجوده چون اون یک علمی هست یک علامتی هست بر وجود پروردگار دریا را میبینی این دریا این آبها را که جمع کرده از اینجا خداوند را میشناسی آسمان یک عالم هست زمین یک عالم هست جبال و کوها جنگل همه اینها عالم هستند چون علما علا وجوده بله الله عزوجل الان بعضی از مسادق عالم را خدمت شما عرض می کنم ببخشید مسادق ربوبیت را ما خاندیم الحمدلله رب العالمین خداوند رب عالمیان هست از اون عالمیان انسان ها هست اینسان را خداي الزواجال پیدا کرد و انسان را تربیت فرمود. چطور تربیتش کرد؟ اولا الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعض ضعف قوه، ثم جعل من بعض قوه ضعفا و إن مراحل مختلفة. أولاً خيل زيف، بعدين قوي ميشي، بعدين قوة وضعف وهم جم ميشي، وهو العليم القدير. يا خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم. إنها تمام مصادقة ربوبية هستند يا فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذي شيء هم ينظر أز. ابتداء انتهاء انتها خدا ميرسانت. فلينظر الانسان إلى طعامه أننا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا كي ترجمه شن رحمي خانيم همي خوراكي من ذكر فرموده ہم مال شما ہم مال چار شما در پایان می فرمائد مطاع لکم ولی انعامکو این تمام شأن ربوبیت است و از مسادیق ربوبیت پروردگار است یا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من تراب ثم من نطفت ثم من علاقت ثم من مضغت این ہمیں بالاخرہ مصداقی تربیت است کم کم از کجا به کجا میرساند ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقت الى اخره پس واقعا رب هست هر چیز را به کمال میرساند الحمدلله رب العالمین رب همه عالمیان هست همه جهانیان هست اون چی که خلق میکند اونرا بادان به کمال میرسانت به نشو نما میرسانت خب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم را توزیادم عرض کردم در بسم الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین معنیش اینه که مالک روز جزا هست یوم الدین اولا دین را قبلا هم خدمت شما عرض کردم تکرار میکنم بعضی از عزیزان تازه آمدن دین چند معنا دارد الله عزوجل دین را در قرآن کریم به معانی مختلفی ذکر کردن یکی دین به معنی شریعت اسلام طریقے مسلوکہ طریقے والروشی کے ما با ان عمل میکنیم آیات زیادی ہاس ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه ان الدین عند الله الاسلام دین بمعنی توہید عبادت دعا اینجا اونجا دو تا دو معنا کرد میکی بیانه ایبادتیه بیانه دعا اینجا هر دوره ادغام میکنه میکی چونکه ما ادغاممون اینه است دعا و هوال ایباده ادعا و مخل ایباده لذا ایبادت تو دعا یکی هست فد ع الله مخلصینا له الدين ای فد ع الله مخلصینا یا فعبد الله مخلص الله دین، ای فعبد الله مخلص الله الیبادا. دین به معنای دین به معنای دعاه و به ایمان البته دعای و ایبادتی که در آن توهید باشد. یعنی فقط برای خدا باشد. دین این است. نه اینکه از غیر خدا خواسته بشه. اینجا ماست فد علا، الله. فعبد الله. نغير الله پس هر جای کے اونجا توحید باشہ چہ توحید فی الدعاء باشہ چہ توحید فی العبادت باشہ اون بے معنی دین حضرت یوسف بیان فرمودن برای اون دوستان و رفقا ايش تبلیغ کردندن گفتن ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلک الدين القیم ذلک الدین القیم دینی قیمتی هست الا تعبدوا الا ایا پس دین به معنی توحید فی العبادت هست به معنی مطلق عبادت نیست bale و السوفین معنای دین به معنی جزا روز جزا مالک یوم الدین یعنی خداوند عزوجل مالک روز جزا هست و اولا اینجا گفتیم مالک یومدین خاندیم مالک یومدین مالک به کسی میگویند که در ملکیتش آزاد هست هر تصرفی که میخواهد بکند مثلا شما اگر در دستتون یه خودکاری باشد و امانت از طرف من باشد خود نمیتونین خودکار را به هر کس بدید هر کاری بکنی باید به من برگردونید اما وقتی که مالکش باشید خب اختیار داری به جیبت میزنی به دوستت هدیه میکنی میفروشی میاندازی هر کاری که دوست داشتی مختار هستی در صورتی که چی باشی؟ مالک باشی لذا خداوند اززوجل وقتی که فرمود مالک یوم الدین یعنی در روز جزا مختار است علماء می در این جمله مالک یومدین رد نصارا هست رد مسیحیان است. چرا چون مسیحیان یک عقیده فاسد دارند معتقدند که خداوند بر خداوند واجب است. خوب توجه بفرمایید بر خداوند واجب هست که گناهکاران را جزا بدهد به کیفر اعمالشون بر نمی نمیتواند بدون جذا گنا... بدون و بدون عذاب دادن اونها را رها بو خدا مجبور است واجب هست بر خدا اینجا قرآن میگه نه مالک است مختار است دوست داره جزا بده دوست داره جزا نده بر اساس همین اونها عقیده خرافی و شرکی دارند میگویند که چون که خداوند عزوجل بر او واجب هست از طرف خدا خواست که ب... گناه بندگان خودش را ببخشد این برایش مقدور نبود این برایش جایز نبود چیکار کرد الا یازوبیل্লাহ فرزندش را در دنیا فرستاد عیسی مسیح را در دنیا فرستاد تا عیسی مسیح آمد خودش را قربان کرد بدار زده شد به صلیب آویزون شد این نوی قربانی هست و با این کار خودش موجب کفاره گناه تمام گناه شد. البته گناهکارانی که پیروی عیسی باشد. بین خاطر اونا گناه معتقدن هر مسیحی. و قال اتليهودو چی لی ادخل الجنة الا من كانهودا او نصارى مسیحیان میگفتند باید مسیحی باشد چرا فقط بهشت مسیحی میره؟ چون که عیسی مسیح کفاره گناهان اونها را داده حالا شب روز ماوره همین تبلیغ را میکند تبشیری همین را میگه میگه هر کسی که آمد مسیحی شد او بخشیده میشه چون که او معتقد عیسی میشه و عیسی مسیح کفاره گناهش را داده کفاره گناهش چیه همین که عیسی به دار زده شده پس این عقیده را مسیحیان بر اساس این میگویند که خداوند اززوجل برایش نیست برایش جایز نیست نمیتواند گناه را ببخشد مجبور هست که عذاب بده اما چون که میخواست که ببخشد بنابراین حضرت عیسی را که علیه عزبالله فرزندش هست او را فرستاد تا اینکه عیسی ایسا بیاد و چکار بکنه خودش را قربان بکنه و کفاره گناهان تمام پیروان خودش باشه اما مالک یوم الدین میگه نه. الله مختار است الله هر کاری که بخواهد انجام میده همونطور که در دنیا این سوال هم خود به خود جواب داده شد که چرا مالک یوم الدین گفتن خداون پادشاه تنها روز جزا نیست؟ پادشاه دنیا هم هست مالک دنیا هم هست خب یک جوابش همینه که ارز کردم این رد مسیحیت است. اونا معتقد هستند که یک سری مجبوری های برا پروردگار از خدا رد کرد نه مالکی یوم دین من پروردگار هستم و دلیل دیگری که دنیا ذکر نشده چون که در دنیا پادشاهان دیگر مالک های دیگری هستند که ادیاء میکنه کنن اینکه پادشاهی اونها مجازی هست برای چهار سال است، برای ده سال است، برای بیش سال است، بیشتر که نیست ملک فلان کشور ملک فلان ملک ملک مصر ملک سعودی ملک اردن اینجا یک سری ملک ها و مالک های مجازی و غیر حقیقی وجود دارد اونجا همین هم نیست در قیامت مالک های مجازی و غیر حقیقی هم وجود ندارد مالک یوم الدین فقط و فقط الله عزوجل است. اما روز قیامت چرا هست؟ فلسفه روز قیامت را این تقاریر را مقداری چون که خلاصه کل قرآن فاتح است مقدار رویق فاتحها باس میکنیم همیشه این باس نیست. این مباحث انشاءالله تمام قرآن هر جایی که چون این مباحث دوباره میاد یک بار تکرار میشه در تمام قرآن مجید این مباحث دردتون میخوره خب اهمیت و فلسفه روز جزا یوم الدین روز قیامت ببینید خداوند اززا و جل تمام کائنات و مخلوقات را خلق کرد و در اون نظام ربوبیتش انسان را هم پرورش کرد غیر انسان را هم پرورش کرد هر چیز را در خدمت انسان گذاشت حتی انبیاء را فرستاد که انسان را راهنمائی بکنند مبعوث شدند رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مبعوث شد قرآن را نازل فرمود آخرین دین را فرستاد و جلوی انسانها خیر و شر را، خوب و بد را، ظلم و عدالت را، خوبی و بدی را همه را گذاشت لذا عقل سلیم میگوید، عدل و انصاف میگوید باید یک میدانی باشد، یک سالن امتحانی باشد، یه جایی باشد که مشخص بشه چه کسی شاکری این ها بوده؟ نعمت پیغمبر نعمت رزق نعمت دین نعمت قرآن نعمت اسلام نعمت های دیگری که پروردگار دیگر داده چه کسی شاکر بوده چه کسی ناسفاس بوده چه کسی خوب عمل کرده چه کسی بد عمل کرده باید باشد شما قبلا هم خاندید وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء يكي مؤمن ہے یکی مشرک ہے یکی ظالم ہے یکی عادل ہے یکی خوش ہے یکی بد بر خورد میکنے خوب اگر هیچ قیامت نہباشد ظلم شما 60 سالتوں هفتات سالتون بود در این شست سال و هفتات سال دست از پا خطا نکردی نه همسایه ازتون آزار دید نه حیوانی نه انسانی حق خدا را هم به جا آوردی حق بندگان خدا را هم به جا آوردی در یک مسیری که برایت مشخص شده در همون مسیر راه رفتی با همه خوب، خوبی کردی خوب برخورد کردی اما یکی دیگه هست که در مقابل شما او همیش ظلم، همیش جفا، همیش فساد، همیش خون ریزی، همیش حق انسانها را خوردن، به انسان ظلم کردن، به حیوان ظلم کردن، در حق خدا اجحاف کردن، نادیده گرفتن، تمام مخلوق از او آزار دیدن. خب نباید یک جایی باشد که مشخص بشه این خوب عمل کرده، این بد عمل کرده؟ اون جا کجاست؟ یا مدین است، پس فلسفه یا مدین این است که باید باشد تا انسان ها خوب و بد از هم دیگه جدا باشد. عقل سلیم این را میپذیره قطع نظر از قرآن کریم. عقل درست هم به این حکم می کند که باید باشد. و دیگه این که هم خدمت شما اشاره کردم اگر روز جزا نباشد در دنیا فساد بپا میشه. هیچ کسی از آینده نمی ترسد. هر کسی هر چی که دستش برسد انجام میده. زورگویان جنایت میکنند کسانی که دارند به کسانی که ندارند ظلم میکنند. اونی که قوی تر از هرچی که از ضعیف هست بالا می کشد نبرای او مال می گذارد نبرای زمین می زارد نبرای باغ میزاره، زارد نبرای مغازه می زارد زن و بچه می خب اینکه که جلوی انسانها را گرفته و انسانها را مقداری رام کرده چی چیز هست اعتقاد به همون روزه جزاء هست روز جزا بایت باشد مالک يوم الدين ایاک نعبد و نستعين نستعین بلے ان ایاک نعبدو و ایاک نستعین رابطے بین انسان و نسبت با اللہ عز وجل جل یاک نعبدو بار الها فقط و فقط تو را عبادت میکنیم شما میدونید یاک ضمیر منفصل است مقدم شده اصلش است کا تو را عبادت میکنیم اما خدای از زوجل خواستند حسر ایجاد کنند چونکه غیر خدا عبادت کسی جائز نیست حرام شرک به این خاطر ایاکرا زمین را مقدم کردند تقدیم فایده حس میده معنیش میشه که فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و ایاکر نستعین فقط و فقط از تو کمک میطلبیم از تو استعانت می طلبیم. ميقينت ان الفاتحه سر القران وسرها هذه الكلمه اياك نعبد واياك نستعين تفسير ابن كثير سر فاتحه فاتحة الفاتحه كي خلاصه كل القران اميش همین جمله هست اياك نعبد واياك نستعين فقط خدا رو تو عبادت میکنی غير خدا رو عبادت نمیکنی خب عبادت چیه مفهوم عبادت را بفهمید بدانید یاد بگیری خیلی مهم است خیلی از انسان ها هستن که غیر خدا را عبادت میکنند وقتی به اونها گفته میشه چرا غیر خدا را عبادت میگه نه این عبادت نیست این فریاد زدن است این احترام گذاشتن است این فلان یک عنوانی برش میذاره میخواد بگه که من فقط خدا را عبادت میکنم اما غیر خدا را فقط دوست دارم خب این به این برمی گردد که انسان این انسان ها مفهوم عبادت را نمی دانند مانا عبادت را نمی دانند ببینید در عبادت دو چیز حس اولا عبادت را از زبان علام ابن قیم رحمه الله شاگرد ابن تیمیه توضيح ميديم تشريم ميكونيم العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور عبادة عبارة هست از انك اعتقاد و درك داشت باشي فهم داشت باشي اعتقاد داشت باشي بان للمعبود سلطة غيبية این معبود كي من اورا عبادة ميكونم سلطة و قدرة غيبية دارد تسلط غيبية دارد چنان تسلطی دارد، چنان قدرتی دارد، چنان قوت دارد که یقدر به ها على نفع و ضرر که می تواند به من نفع برساند، می تواند به من ضرر برساند پس این اعتقاد را داشتن، این باور را داشتن و بر اساس این باور حرکت کردن او را نافع دانستن، او را زار دانستن و بر اساس این باور او را تعظیم کردن او را کرنش کردن از او خواستن به پناه او رفتن برای او گسفند کشتن اینا همه کسانی که این کارا را میکنن چرا؟ انتظار دارن از اون شخص که بمن نف برسانت ازمن زرر رد كون اعتقاد دارت ابارة عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والزرر لذا من فكل سناء ودعاء وتعظيم يصاحبه هذا الاعتقاد هر دعاي اي فلان ادركني اي فلان ای فلان خوز بیادی. فکل دعاین و سنائین هر سنائی هر وردی هر وردی کسی میگفت جوانی رفته بود یه جایی انسان چقدر انسان ها واقعا گمراه هست این گمراهی هم خیلی ها به جهل برمیگردن رفته بود یه جایی گفته بود که من میخوام بیعت بکنم گرچه در بار بیعت هم صحبت میکنیم، اگر بر اساس شریعت و جاده شریعت باشد و در اون بدعت و خرافات نباشد انسان برای اصلاح بخواهد با کسی بیعت بکند شاگردی کسی را قبول بکند تربیت کسی را قبول بکند خیلی هم خوب است اما متاسفانه اکثر کسانی که در این مسیر امروزه هستند دوچار خرافات ایلا الله. لذا رفته بود گفته بود که من مشکل روانی دارم همیشه افسردگی دارم گفته بودند که شما هر وقتی که افسرده شدی حالت بد شد اسم همین پیر را بیار و به زبان ورد کن نامش را بار بار تکرار کن تکرار کن حالت خوب میشه الان این دعا و سنا هست نیست، به این عقیده که به من نف میرسه من مشکل از اعصابم برطرف میشه مشکل روانیم دور میشه ناراحتیم برطرف میشه هر دعای لازم نیست سجده بکنه انسان همینو عبادت بگه هر چیزی که بر اساس این اعتقاد باشه عبادت اون فرده عبادت اون فرده شرک چیه دیگه همینه لذا فکل سنائن و دعائن و تعظیمین يصاحبه هذا الاعتقاد والشعور هر دعائي سناي تعظيمي اداي احترامي كهمرا با اين اعتقاد باشد فاحيه عبادتون ان تي ميشه عبادت ميشه پس عنايت داشته باشيد در مفهوم الهدايه عبادت دو چيز هست يك غايت تزلل غايته تزلل از طرف عبد عابده یعنی عجز و ذلتی که به غایه و به نهایه برسد دو غایت تعظیم یعنی برای اون فرد یک عظمت و یک جایگاه بسیار رفی و بلند که تا آخر میره برای اون چی داشته باشه؟ اعتقاد داشته باشه اما با این اعتقاد و شعور که معبود تصرف غایبانه دارد قدرت دارد میتونه نف برساند میتونه ضرر برساند پس این دو چیز هست این اعتقاد که در او اعتقاد داشته باشد که غایت تعظیم را دارد من هم غایت تزلل را دارم بر اساس این انسان وقتی که کسی را تعظیم میکند این میشه عبادت مثلا ما معتقدیم الله عزوجل در غایت تعظیم هست و بعد چه کار می کنیم خودمون را در غایت تزلل و عجز قرار می بهترین عضو من که جبین هست و چهره هست به خاک می برای او در محظر او تزرع می کنیم گدائی می کنیم دست بلند می این میشه شه عبادت پروردگار چه دعا چه رکو چه سجده چه دور خانهش تواف چه برای رضا و خوشنودیش خیرات و نظر و نیاز چه نامش را ورد زبان کردن عبادت چون چندین نوع عبادت داریم عبادت زبانی داریم عبادت جانی داریم عبادت مالی داریم همه اینها را انجام می دیم در همه اینها غایت ذلت را انتخاب می کنیم برای خودمون اختیار می کنیم برای او غایت تعظیم را اعتقاد و باور داریم خب دو وصف به معبود اختصاص دارد شما در قرآن کریم می خاند الله در آیات بعضی جا گوشدت کردم بیشتر هم یاد, یاد آوری و گوشد می کنم که معبود کسی میتونه باشه که دو تا وصف داشته باشه چون در غایت تعظیم که نمیتونه قرار بگیره کسی که دو وصف داشته باشه یک، عالم الغیب یعنی کسی میتونه معبود من قرار بگیره که از غیب خبر داشته باشه از اسرار خبر داشته باشه از مخفیات خبر داشته باشه اگر من تو جنگل افتاده بودم اگر من تو جزیره بودم اگر من در قعر یک چاهی افتادم در تاریکی یک خانه تاریکی یا در خانه‌ای هستم هر جا هستم او را وقتی صدا می زنم اون باید عالم باشه از حال من خبر داشته باشه این وصف اول هست و این شرط اول هست که معبود باید چی باشد عالم و باشد دو مالک و مختار و متصرف باشد یعنی او قدرت داشته باشد تصرف داشته باشد اختیار داشته باشد هر چی میخوام فرزند میخوام بتونه به من فرزند بده شفا از مریضی میخوام بتونه شفایم بده ارز به خدمت شما پول میخوام مال میخوام سرمایه میخام، بالاخره عزیز گمشده میخام، میخوام هرچی که میخوام خرد میخوام یا کلان میخوام ریز میخوام یا درست میخوام قدرت داشته باشه لذا معبود باید مختار و متصرف باشه اگر نباشه همون نمیتونه معبود باشه به این خاطر هست که در قرآن کریم میبینیم خدای عزواجل این دو وصف را به صورت عمده برای خودش بیان میفرماید و از غیر خودش چکار میکند نف میکند بیشتر بعد از این دو وصف میاد لا اله الا الله یا لا اله الا هو این نکته را دقت کنید چون که خداوند میفرماید قدرت هم مال من علم غیب هم مال من لذا معبودیت هم مال من الوهیت هم مال من دقت بفرمایید الله تعالی میفرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار انت تصرف است و ربک یخلق ما یشاء و یختار هر چی که بخواهد او خلق می کند اختیار می کند انتخاب می کند برای تو او اگر بخواهد فرزندی را اختیار می کند و خلق می کند. ورب که ما ش او ما کان الله هم اما برای اونایی که شما می خانید اونا ندارن خانی این اختیار را. ببین برای خودش اثبات از غیر خودش؟ نف ما كان لهم ملخيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون لذا ان الله پاک است برتر اس از اونچه شما کہ انسان ها شریک میسازن خب این چی شد این از کنم که قدرت تصرف مختاریت چی مونده علم غیب بعد از این می فرماید و ربک يعلم صدورهم و ما تكن صدورهم وما يعلنون رب تو میداند آنچه که مخفی میکنند سینه هایشان و آنچه که علنی میکنند ظاهر میکنند بعد از اونچه می, می فرماید وهو الله لا اله الا لذا اینی که هم آلم الغیب هست هم مختار و متصرف هست این الله هست این معبود هست لا اله الا لذا کسی دیگه لایق معبودی به جز او نیست این هست مفهوم عبادت مفهوم بندگی ایا که نعبد که ما میگوییم یعنی خدا فقط و فقط ترا عبادت میکنیم لذا همه نوع عبادت چه زبانیش باشه، چه جانیش باشه، چه مالیش باشه، با این شعور، با این اعتقاد برای غیر الله کفر شرک و انسان نباید برای غیر خدا اونها را انجام بده اما شبهی هست که بعضیها غیر خدا را تعظیم میکنم، مطلقا تعظیم عبادت نیست این قید را گفتیم بعضی ها هم خیلی تند می روند تا کسی تعظیم می کند بعضی تعظیم ها درست هم نیستند ولی شرک نیستند می بگیم حرامند یا در حد کراحت هستند لذا بعضی مردم عادت دارند نه با هم دیگه وقتی که خوش آمدگویم دست به سینه می گذن بعضی بگیم شرک دست بستن فقط برای خداست نه این طور نیست این شعور و این اعتقاد در عبادت لازمه اگر این شعور اعتقاد را داست که این طرف به من نفع و ضرر می رساند این طرف سلطه غیبی دارد این طرف عالم الغیب هست این طرف از مشکلات من میدوند خب اون درسته ولی نه هر تعظیمی را انسان چکار بکند شرک بداند لذا بسیاری هستند که تعظیم می کنند تمام مسلمانان نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم ادا احترام میکنند نسبت به استاد نسبت به پدر نسبت به اولیاء خاصان دوستان خدا خب اگر در این تعظیم حد و حدود شریعت رعایت بشه خب این اشکالی ندارد اما اگر حدود شریعت را کسی رعایت نکرد و پارا فراتر گذاشت باز هم مارک شرک نباید زود صادر کرد مگر اینکه با این شعور با این اعتقاد و با این باور باشد متوجه هستید؟ اگر این شعور و این اعتقاد باشد چرا؟ اگر نباشد ما در بحث سجده تحیه خاندیم که در این دین ما در این شریعت ما سجده لغیر الله حرام هست اگر عبادت باشد در شریعت های دیگه هم نبوده اگر برای عبادت باشد شرک است. هم در شریعت های گذشته هم در شریعت ما اما اگر برای ادای ادا احترام باشد خب بعضی میگن چون که این تعظیم اختصاص به رب العالمین دارد لذا اما بعضی دیگه میگن نه احتیاطا مشرک نگویم کسی که به منظور تحیه و تعظیم سجده می کند ولی در حرمت شکی نیست حرام که هست پس شرک بودنش با این شعور با این اعتقاد بانه للمعبود سلطه غیبیتون که میتونه به من نفع و ضرر برساند یکدرو به حالا نفع و ضرر خب پس تعظیم غیر خدا اگر در حد تعظیم و عدای احترام باشه مثلا برای بزرگان برای رسول الله صلی الله علیه وسلم برای استاد برای شیخ برای پدر و مادر برای بزرگتر از خود اشکالی ندارد اما این نکته همینجا لازم است که بعضی تعظیم ها هستند که خاص خدا هستند بعضی تعظیم ها هستند که خاص خدا هستند برای غیر الله را انسان انجام بده ولو اینکه به نیت تعظیم باشد حرام است به نیت عبادت نیست به نیت تعظیم است مثلا کسی جلوه استاد میاد رکو می کند خب این رکو کردن از عبادت های اختصاصی هست شما استادت را پیرت را عبادت نکردی ولی تعظیم کرده این تعظیم اختصاص به رب دارد این حرام است سجده حرام است تواف حرام است ارز کنم که تعظیم های غیر از اینها اشکالی ندارد در صورت که اختصاصی نباشن. پس این شد مفهوم اییا که بر بار فقط و فقط تو را عبادت میکنیم بجز تو را کسی را عبادت نمیکنیم وإياك نستعين نستعین این يعني حسر است فقط از تو می طلبیم مفهوم مخالفش چی می شه؟ یعنی از غیر تو ما کمک نمی گیریم از غیر تو استعانت نمی طلبیم در حاجات و در مشکلات خودمون حال مفهوم استعانت چیه؟ استعانت اینه که در حاجات و مشکلات کسی را مافوق اسباب فریاد زدن مافوق اسباب این قید خیلی مهم است شاید شما رفیق را بگه آقای زید این کتاب را بده بیا کمک هم کن اینها ما تحت اسباب در غالب اسباب اصلا بحثش نیست این تو قرآن هم هست زلقرنین میگه که عینونی بقوه مره کمک کنید، مره یاری برسانید، با نیروی جسمانی که دارید. پس کسی را ما فوق الاسباب فریاد زدن و از او حاجت خواستن. این از استعانت. الله عزوجل می این نو حاجت را که بالدعاء ما تعبيرش میکنیم خاصتن رب بالدعاء تعبيرش میکنیم فقط و فقط أزمن بخايد وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم فقط وفقت ازمن بخاهيد وبخانيد مرا من اجابت ميکنم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري كسانيك استكبار واستنخاف مي كنند از عبادت من يعني عن دعاي اول تعبير به دعا كرد اخر تعبير به عبادت كرد تاکه من شما بفهمیم که الدعا هو العبادت، دعا خود عبادت است، غیر عبادت دیگه چیزی نیست، و اینهایی که غیر از خدا را صدا می زنند در حاجات ما فوق الاسباب از انها استمداد می طلبند، گمراہ تر از اون ها وجود ندارد و من اضل ممن يدعو من دون الله ملا يستجيب له الى يوم القيامه چكسی گمراه تر از اون انسانی که فریاد می زند کمک می خواهد از غیر خدا اونهایی ایرا فریاد می زند که اجابت نمی کنند تا روز قیامت یعنی ابدا ابدا قدرت اجابت را ندارند چرا شما مثل شما بنده هستند مثل شما عباد خدا هستند ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم انها که شما می خاند از الله اونها بنده هستند مثل خود شما اینها نمیتونند که بنده نمیتونند بنده را اجابت کند بنده نمیتونند مشکل بنده را حل کند لذا عبادت و استعانت اینها باید اختصاص به خدای از زوجل داشته باشند خب حال شبهی که در مقدمه هم ذکر شده الانم ارز میکنم خیلیها امروز این شبهره پر رنگ مطرح می کنند که شما میگویید استعانت از غیر خدا جایز نیست ما در کارهای روزمره مون در مسائل روزمره مون از هم دیگه کمک می خواهیم یکی از کسی پولی میخواد کسی دیگه غذای میخواد کسی دیگه کمک جسمی میخواد بلاخره هم دیگر را کمک کردن اگر شرک باشد پس هیچ موحدی در دنیا باقی نمیماند که در جواب ارز کنم ما وقتی که این قید را گفتیم معفوق اسباب در غالب اسباب نه در غالب اسباب در قرآن کریم ثابت است حضرت عیسیٰ گفت من انصاری الله. قال الحواریون نحن انصار الله پس این نصرت این یاری در غالب اسباب یعنی تفنگت را بردار شمشیرت را بردار بیا در کنار من بیست جهاد میکنیم، بی دین خدا را بپیش می بریم این در غالب اسباب است یعنی که حضرت زلقرنین گفت که فأعينوني بقوه أجعل بينكم وبينهم ردم ما را شما کمک كنيد با نیروی جسمانی کی دارید بین شما و بین اون کفار من سد میگزارم حائل میگزارم پس این کمک گرفتن در غالب اسباب از خود خدای عزوجل مر تشویق فرموده که همدیگر را کمک کنیم تعاونوا علی البر و التقوا بر اساس بر و تقوا نیکی بکنید تقوا به پیش بره دین به پیش بره و معروفات به پیش بروند همدیگر را کمک کنید همدیگر را یاری کنید این یاری کردن این کمک کردن در قالب اسباب است به همدیگه برای همدیگه امکانات فراهم کنید وسایل فراهم بکنید اسباب و آلات فراهم بکنید پول بدید خرج کنید تا دین خدا به پیش بره در قالب اسباب اینها از قرآن ثابت هستند اون که ممنوع هست کمک خواستن کمک گرفتن عاجت طلبیدن دعا کردن ندا کردن فریاد زدن معفوق اسباب یعنی معتقد باشی این بزرگوار غیر خدا هر که باشد این بزرگوار سلطه غیبی دارد عالم غیب هست صدای من را میشنود نافع ارز کنم نافع و زار هست مالک نفع و هست مشکل کشه حاجت رواست من که او را می طلبم او مشکل من حل می کند این استعانت از غیر خدا این شرک ما هر روز می خانیم ایا که نستعین خدایا ما فقط و فقط تو را می, می ای ولا نستعین و غیره که غیره از کسی کمک نمیخواید. پس این شد جواب ایا کنعبودو و چه و ایا, چه مفهوم ایا, و ایا تعین اهدن السراط المستقيم بعد از این که نسبت خودمون را رابطه خودمون را با الله عز و جل بیان کردیم که نسبت ما نسبت عبدیت است، نسبت مستعین است، نسبت کمک گیرنده است، نسبت محتاج است، و نسبت ما نسبت معبود است، نسبت ذاتی است که مشکل کشای ما است، حاجت روای ما است، دست ما را میگیرد حاجت ما را براورده می کند، بعد از اینکه گفتیم و گفتم من در چه جایگاهی هستم حال دعا میکنیم اهدن السراط مستقیم مارا راهنمایی نمایی بفرما بر سراط مستقیم نکته اول که خدمت شما ارز بکنم اینه که از سراط المستقیم این الفلام الفلام عهدی هست یعنی راهی که مشخص است در ذهن شما تعیین شده است کدوم سراط مراد است؟ یعنی سراط ایاک نعبد و ایاک نستعین همین راه توحید همین راهی که بغیر از تو از کسی کمک نخواهم بغیر از تو کسی را پرستش نکنم عبادت نکنم ما را به اون راه گامزن بفرما هدایت بفرما یعنی بر اون مسیر قرار بده خب از کجا گفتیم که عبادت صراط مستقیم هست توحید فی العبادت در قرآن کریم داریم در دعوت عیسی علیه الصلا السلام عیسی فرمود قومش را تبلیغ کرد راهنمایی کرد بعدا فرمود ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ای قوم من الله رب من هم هست رب شما فقط او را عبادت کنید نه من ایزر فعبدوه فقط او را عبادت کنید هذا صراط مستقيم صراط مستقیم اینه هر چکه عبادت غیر الله باشه شرک عبادت فقط الله باشه صراط مستقیم این آیه ای که به روایت و به نقل از تبلیغ عيسى عليه السلام در قرآن کریم آمده و همچنین آیه دیگر الا م اعهد یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان خداوند می‌فرماید ای فرزند آدم ای اولاد آدم ای من پروردگار با شما عهد نکرد بودم پیمان نبستی بودیم کہ اللہ تعبد الشیطان شما شیطان را عبادت نکنید شیطان یعنی جاہایی که شیطان را نمائیت می کند افرادی که شیطان را نمائیت می کند اللہ تعبد الشیطان انہو لكم عدو مبین چونکہ شیطان دشمن آشکار شماست وَأَنِعْبُدُونِي هذا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ فقط و فقط من الله را عبادت کنید هذا صراط مستقیم صراط مستقیم این پس غیر الله را عبادت کردن گمراہی شرک خدا را عبادت کردن چی ہے صراط مستقیم پس احدن صراط المستقیم بر اساس ان دلائل عرض می کنم کہ الفلام در صراط مستقیم چی هست؟ عہدی ہے یعنی اینکه فقط تو را عبادت کنیم از تو کمک بطلبیم بر این مسیر خدای ما را گامزن بفرما بر این مسیر ما را قرار بده اهدن صراطا مستقیم البته یکی از مصادیق صراط مستقیم این است صراط مستقیم مفهوم های دیگری دارد مصادیق دیگری هم دارت یک سرات مستقیم همین عبادت که خاندیم دو تمام احکام اسلام چون اینا همه در قران ثابتند تمام احکام دین سرات مستقیم است س سرات مستقیم شامل عبادات و معاملات و اخلاق و معاشیات و سیاستات همه میشه معاشرت، سیاست، اخلاق، معامله، عباده، مطابق دستور پروردگار باشد، این هسترات مستقیم. البته شیش بخش هستند. قرآن کریم بر اساس تقسیمی که علماء تقسیم کردند از 6 چیز صحبت می کند. یک ایمان یا عقاید. ایمان یا عقاید. دو عبادات سه معاملات چهار اخلاق اخلاق وفای عهد دروغ نگفتن و و این اخلاقیات پنج معاشرت یعنی حقوق هم دیگر با هم دیگر و شش سیاست حکومت کردن بر اساس دستور خدا و حکم خدا و فرمان پروردگار اینا همه جز سرات مستقیم هستن خب در سوره مبارکه انعام هست همه این ها سرات مستقیم گفته شده قل تعالو اتلو ما حرم ربكم عليكم ببين از ايمان قرفت تا عبادت تا اخلاق حميميا قل تعالو اتلو ما حرم ربكم عليكم الله تشركو به شيئا وبالوالدين احسانا بعض متعلق بخالق بعض متعلق بمخلوقه ولا تقتلو اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش وهذا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إن يك ايه آيه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وَأَوْفُ الْكَيْلَ مُعَاشَرَتْ وَمُعَامِلَاتْ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Hold that in, I know cheese by در این نه چیز هم ایمان بود هم ارز کنم که عبادات بود هم معاملات بود هم اخلاق بود هم معاشرت بود هم سیاست و حکومت بود و اذا قلتم فعدلو بعد از اینکه همه اینها را خداونده از و بيان فرمود بعدم يفرمايت وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون سبار وصيه الرب عامده وصيه بمعنى دستور تعكيدي و عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم فرماید هر کی میخواهد وصیت نامه مهر شده و ثابت شده رسول الله صلی الله علیه وسلم salam را به این سیعه را به و بش عمل کند اینا وصیت نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هستند پس صراط مستقیم مفهوم سومی چی هست تمام دین چه ایمانیات و عقاید باشند چه عبادات باشند چه معاملات باشند چه اخلاق باشد چه معاشرت و حقوق باشد چه سیاست و حکومت باشد همه اینها تبقی دستور خدا اگر شد بر صراط مستقیم هستیم و هذا هادا صراط مستقیما بله اهدنا صراط المستقیم اهدنا هدایت انجا هست هدایت دو معنا هست. یکی هدایت به معناي ارائه طريق هست و دوم دو ارسال إلى المطلوب است. کسانی که علم خاندان مفهومی را میدانند ولی من مثال ساده ارزش کنم. ارائه طريق یعنی راه نشان دادن کسی میاد اسماعی می فرست که خانه الزیت کجاست شما میگه مستقیم برو کوچه اول بپیچ میلان دوم را سمت چپ بپیچ پلاک فلان نشان میدی دیگه دی دی تکان نمیخوری این هست اراۃ الطریق به این معنا خداوند عزوجل همه انسانیت را هدایت فرموده دوم دو ایصال ال مطلوب ال مطلوب اینه که شما میگی بلد نمیشی سرگردان میشی بیا من میبرمید دستش را میگیری همه این مسیر رمی میپیمایی میگه این داره این ای خونه زیده هست این صورت دوم هدایت است خداوند عزوجل همه ما را هدایت فرموده راه را نشان داده به معنی اراعت و طریق اینجا مراد نیست اهدنا الصراط مستقیم معنیش اینه که خدایا دستم را بگیر موهای پیشانی را بگیر بر مسیر حق بر صراط مستقیم منو گامزن بفرما یا اینکه از قبل شما بر صراط مستقیم هستی که اینو میخونی به معنی دوام هست به معنی بقا هست ادامه هست یعنی بر صراط مستقیم که دارم راه میرم بر صراط مستقیم که دارم عمل میکنم چکار کن مرا استقامت عنایت بفرما تا ادامه بدم لذا این هست مفهوم هدایت و بعد هدایت بردنو هست یکی هدایت فطری یکی هدایت کسبی هدایت فطری را هم انسان دارد هم غیر انسان دارد خداوند میفرماید اعطى كل شيء خلقه ثم هدا خداوند هر چی به مخلوق داد بعد راهنماییش هم کرد فطرتا والذي قدر فهدا خداوند هر چیزی را برایش حد و اندازه بیان میکنه بعد اون را هدایت میکنه هدایت فطری مثل که جوجه تازه از تخم میاد بیرون که بهش درس داده یاد داده که رزق و روزیت زمین نک میزنه به زمین دانه را پیدا میکنه این هدایت چی هست؟ فطری هست وقتی که از حیوانی بچش بیرون میفته برهی هست، ای هست، ای هست یا انسان وقتی که میاد خداوند فطرتا او را کرده مستقیم متوجه چی میشه؟ پستان مادر میشه شیر مادر میشه ه hey, سعی میکنه ابتدا دیدید بر رسعی میکنه بازغال سعی میکنه بگیره میفته او کی بهش گفته اینجاست؟ قذایت این هدایت فطری هست وال قدره قدرره یعنی خداون برای شما رس و روزی مقدر کرد بعد شما رو را راهنمایی کرد برو دنبالش پس این هدایت هدایت فطری هست که خداون هم به انسان، عنایت فرموده و هم به غیر انسان عنایت فرموده اما هدایت دوم هدایت کسبی هست که انسان باید اون را چکار کند کسب کند درجاتی دارد ما درجاتش را در مقدمه خاندیم فقط الان خلاصه می کنم چون در مقدمه مفصلن خاندیم اولین درجهش عنابت هست دومین حق باشی، دومین دو هدایت است خداوند بهت انایت میکنه سومین سو استقامت است مشکلات آمد جاخالی نده و در نرو چهارمین ربط القلب است. اسحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چارتی کسب کرده بودند خداوند عزوجل میفرماید ولیکن الله حبب الیکم الايمان وزینهه فی قلوبکم و کرها الیکم الفرک کفر و فسوق و عصیان خداوند محبوب قلب شما ایمان قرار داد و ایمان را در دل شما زینت بخش و آراسته کرد کفر و فسق و را خدای تعالی در قلب شما مکروه و ناپسند قرار داد. پس شما مؤمن، شما نمازگزار، شما مسلمان که آمدی در نماز و میگه اهدن سراط المستقیم به چه معنا. معنیش اینه که دوتا اولی را حاصل کردی انابت داری، هدایت نصیب شده که آمدی در محظر معبود دست بستی حال ازش دو چیز می خواهی. اهدن سراط المستقیم بار اله استقامت نصیب بفرما. و دوم دو ربط القلب من انایت کن. چی نه کن؟ یعنی چنان استقامت باشد. چنان دلم را گره بزن. دلم را قرص بگردان که از این مسیر هرگز منصرف و منحرف نشوم. لذا الله عز به جل بما آموزش داده که ما از خداوند انگونه صراط مستقیم را بخواییم هدایت را بخواییم اهدن السراط المستقیم ما را بر صراط مستقیم هدایت بفرما ببینید الله عز انسان را واقعا خوب هدایت فرموده خوب راهنمایی نمائی فرموده اولا انسان را خدای تعالی پیدا کرد والله خلقكم لا تعلمون شیعه هیچی نمی دونست اسباب علم بیش داد و جعل لکم السمع والابصار والافئده اینها همه آلات علم هستند آلات تحصیل علم هستند سم داد بسر داد قلب و عقل داد تاکه لعلکم تشکرون سپاس گزار باشید عبادت خدا بکنید بعد خداوند عز به اینها بسنده نکرد دیگری دیگر اینها همه جزه هدایت هستند هدایت الهی هستندگر به اینها فکر بکنیم دلایل دیگر چی است در عالم تکوین در کائنات اِنَّ خلق خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لَوْلِ الْأَلْبَابِ آیاتی که شما دیروز خاندید الله اللذی سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامر الى اخر تمام آیات تکوین تمام عالم کون را پروردگار ایجاد کرد همه اینها هدایت هستند باید شما از وجود اینها به به وجود خالق پی ببرید و بینک اینکه خالق یکتا است و لباس هم خدای تعالی شما را غنها نگذاشت این عقل با این آلم تکویم برای شما کافی نیست بعد از اون چی را فرستاد؟ پیانبران را فرستاد رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون لنناس علالله حجتن بعد رسول رسول را فرستاد که این رسول آمدن راهنمایی کردند و بعد از راهنمایی مجدد هذا مبشرین و منذرین که برای مردم حجتی بعد از ارسال رسول نباشد. لذا دیگه هیچ عذری نیست. پس همه اسباب و آلات هدایت را خدای عزواجل به ما این فرموده چشم و گوش و عقل و قلب داد. ارز کنم که بعدن خداوند عزواجل کائنات را و دلائلی که دال بر وحدانیت او هستند هم بمداد که با عقل اونها را درک بکنیم بعد رسول را فرستاد دیگه بعد از این همه اسباب هدایت هیچ عذری برای انسان وجود ندارد لالا يكون للناس علی الله حجه بعد الرسل یعنی بعد ارسال رسول حال که شما اینها را حاصل کردید الله عز و جل به شما بازم یاد میده که از من بخوا تا این تکمیل بشه استقامت نصیبت بشه و ربط القلب نصیبت بشه لذا از خدا این گونه بخوا اهدن الصراط المستقیم راهنمایی بفرما و دیگه اینکه اهدن ما را استقامت نصیب بفرما گامزن بفرما بر صراط مستقیم صراط الذين انعمت عليهم ان صراط المستقيم از نظر ترکیب مبدل منه است صراط الذين انعمت عليهم جهاست بدل است یعنی کدام صراط کدام صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم راه کسانی که بر آنها انعام فرمودی راه کسانی که بر آنها انعام فرمودی منعم عليهم خانديم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. لذا إنهم منعم عليهم حسنا. بار إلها بار طريقه بار, بار منعم عليهم هم مارا استقامة نسيب بفرما. بإن معنى حسنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان بدل يا صفه الذين انعمت عليهم هست انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ن نهي کی شما بر اونها غضب فرمودید و گمراہان مغضوب علیهم بر اساس روایتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم هست یهودی ها هستند پرسیدین یا رسول الله مغضوب علیهم کی هست يهود هسته خضاواند عز وجل هم در قران فرموده وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباء بغضب من الله وباء بغضب من الله بس مغزوب عليهم هستن القرآن يفسر بعضه بعضا واز رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن كي يا رسول الله ضالين كي ها هستند فرمود نصارى هستند اضل من قبل واضل كثيرا وضل عن سوايس سبيل اما ان را خدمات شما عرض کنم که وقتی که ما میخانیم و در روایت داریم مصداق مغضوب علیهم یهود هستند و مصداق ضالین نصارا هستند منش این نیست که در این امت دیگه هیچ که نمیتونه مغضوب علیه این و نمیتونه ظال ظالب باشه گمراه باشه نه میتونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمودند که لَتَتْبَعُونَ سُنَنَ من شما پیروی میکنید روشهای پیشینیان را گذشتگان را شبر به وجب به وجب یعنی امکان دارد در همین امت هم باشند کسانی که بر راه و رسم بر روش بر اقاعد و بر خرافات گذشتگان باشند جنان چشاوالی الله رحمه الله می که در قرآن کریم روی سخن با چهار گروه دشمن است خسم چند گروه هستند؟ چهار گروه هستند یک کفار و مشرکین که در اول سوره بقره میخوانیم، اینا الذين كفروا سواً عليهم دو یهود دو منافقین، سه یهود چار ناساره. فرمودند اینها هر یک اوصاف و خصائصی دارند. همون طوری که آن حضرت صلی الله عليه وسلم پیش گویی فرمودند، حسند کسانی در این امت هم که به اون اوصافی هستند متصفت دارندگان اون اوصاف هستند بنابر این وقتی که ما تفسیر میکنیم و میگی مراد از مقدوب عليهم یهودی ها هستند و مراد از نس اضلل نصاره هستند معناش این نیست که دیگه در افراد از این امت دیده نمیشه نه خیر در این امت هم اینها وجود دارد بنابراین در مقدمه هم ارز کردم الان هم کوتاه ارز میکنم که ضالین که از زلالت هست زلالت هم چار درجه دارد ببینید کسانی که این درجات را دارند اینها هم جز ضالین هستند زلالت هم چار درجه دارد یک شک و ریب. انسان دوچار شک و ریب میشه بعد از اینکه دچار دو دوچار شک کریب شد دوچار تعصب اناد میشه بعضی گفتن اناد تعصب این اولین قدم گمراهی هست اولین قدم زلالت هست بعد از اینکه انسان وارد این مرحله شد از سوی خداون زلالت برش میاد گمراهی برش میاد گمراه میشه وقتی که گمراه شد با اهل حق مبارزه می کند حق را دف می کند و در مسیر حق شبه ایجاد می کند این را می جدال بالباطل چی می گویند؟ جدال بالباطل مثلا شما آیه حق را می خانید آیه پروردگار را می خانید که غیر خدا کسی نمیتونه حاجت رو برآورده بکنه اون در مقابل یک افسانه و یک داستان دروغی میاد میگه نه فلان فلج رفت از غیر خدا خاص خوب شد فلان نابینا رفت چشماش باز شد این جدال بالباطل یعنی معناش اینه الا یزوب الله این آیه غلط میگه پیغمبر درست نمیگه قرآن درست نمیگه این هست جدال بالباطل وقتی که جدال بالباطل باشد یعنی انسان ها بیایند و با حق مبارزه بکنند به وسیله باطل به وسیله افسانه ها به وسیله اساطیر الاولین به وسیله قصه ها و داستان های دروغین اون وقت خدای عزوجل دلشون را مهر میزند مهر جباریت میگند مهر میزند دیگه هدایت درون او نمی آید از هدایت محروم می ماند برای همیشه در گمراهی می ماند این را میگن گن ختم القلب این را خدای عزوجل به ختم هم تعبیر می کند ختم الله علی علا این را خدای تعالیه به طبع هم تعبیر می فرماید بل الله علی علا قلوبه حال ببینید در این آیه سوره مبارکه مومن که شما خواندید هر چهار تا درجه هست رجل مومن چی گفت ولا قد جاءكم يوسف من قبل بالبينات یوسف قبل ذی با دلائل از طرف پروردگار آمد دلائل توحیدی دلائل عقلیه فما زلتم في شک مما جاءكم به اولین درجه زلالت شما در شک و تردید قرار گرفتید به دیده‌ی شک نگریستید چون که نسبت به خود یوسف اناد بود تعصب بود به دیده‌ی شک و تردید نگاه کردید حتی اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حتی زمانی که یوسف از این دنیا رخت بر بست وفات کرد هلك بالموت شما گفتی بعد از این دیگه خداوند پیامبر نمیفرستد خب درجه اول چی بود شک حال ببینید درجه دوم را خدا میده کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب این گونه خداوند گمراه می کند هر اون انسانی را که مصرف و متجاوز و مشرک باشد مرتاب یعنی دچار شک و تردید باشد خب این درجه دوم شد چی شو كذلك يضل الله درجه سقوم الذين يجادلون في ايات الله کسانی که جدال میکنن در آیات الهی یعنی بعد از اینکه آیات نازل شد دلائل از سوی پروردگار آمد جدال میکنن به سلطان اتاهم هیچ سلطانی ندارند یعنی مدرکی ندارن دلیلی دلیل و نقلی ندارن بی خود جدل می کنند اولا اینها مورد خشم خدا واقع می شوند کسی که مورد کسی که جدل میکنه با اهل حق کبرا مقتا عند الله و عند الذين امنوا از نظر خشم و غضب نزد الله اینها مورد خشمند و نزد مؤمنین مؤمنین هم با اینها بغض دارند خب آخرین درجه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار این گون خداوند مهر می زند بر دل هر متکبر جبار یعنی وقتی که جدال بالباطل را ایضا ما بدهد خدای عزوجل دلش را مهر می‌زند او را از هدایت برای همیشه محروم می‌کند پس در سور بقره هم این سوال را می خانیم وقتی که سوال ایجاد میشه که اینها را خداوند وقتی که از هدایت محروم کرده و بیچارها چه گناهی دارند؟ گناهشون اینه اینا که محروم شدند به سبب عمل کرده خودشان محروم شدند صدق الله و العظیم